عون بالله من شر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. الوهي هبلي كمولا للقطوع إليك وأن إلى أبصار قلوبنا بذياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجبا النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز السك بمحمد وعلى بيته صلوات عليهم وعليهم أجمعين بعضی تعاریف رو از مفهوم نقل کردیم <تصفيق> چند نمونه البته ما گفتیم تعاریف ارائه شده و به اون نکته و گرانیگاه تعاریف که به نحوی زابطه مفهوم قلمداد شدن به حساب میاد که چه چیزی چه امصوری چه قیدی بارس میشه که یک معنای سانبی رو رو ما معنای مفهوم بیانگاریم. هرچند که غالباً تلازم رو جز عناصر مهم و تعیین کننده فنام داد کردند اما خب ما عناصر بسیاری داریم که تلازم در اون جاها وجود داره اما مفهوم به اون نمیگیم وقتی میگیم مثلا آیا حضور به مقدمه به وجوب مقدمه دلالت میکنه یا نه اونجا تلازم هست ملازمه هست اما لزوماً بمتونیم بگیم به وجوب مقدمه رو به مسابه مفهوم از وجوب سر مقدمه دهک میکنیم حرمت زد رو احیانا جز مفاهیم قلمداد کنیم یا سایر موارد مشابه رو چه چیزی در مفهوم وجود داره که به اون اعتبار میگیم مفهوم است خب نظراتی رو نقل کردیم از مرحوم آخون مرحوم میرزای نائینی محقق اسمانی دیگرانی هم هستن چهی من بخواستن بگذرم ولی یک نگاهی به تلقیشون هم خواهیم داشت. ما بر این که بتونیم هم تلقی خودمون رو از مفهوم ارائه کنیم و اون اناسری رو که ما بر اون معتقدیم مشخص کنیم و احیانا در مقابل نقد نهایی این تعریفی که گفته شد یا ممکن است گفته شود و یا اون در مقد ملاک و مناتی که برای مفهوم انگاری مطرح شده و میشود خواهیم مبنای پیدا کنیم یه بحثی رو باید بگیم اول تعریف خودمون رو از مفهوم عرض بکنیم و بعد بریم سراغ در واقع مقایسه معنای مفهوم با انواع مفاهیم و معانی و ظهورات ما دنبال ظهوری ما مثل در مسئله مقدمی واجب در واقع در پی ظهور نیستیم دو تا کلمه کلیدی در بحث داریم یکی کلمه فهمه به نظر من یکی کلمه ظهور ما اینجا میگیم مفهوم از فهم اخذ میشه در معانی لغوی که نرمز کردیم گفتیم بعضی گفتن که کلمه‌ی فهم این واژه اونجایی به کار میره که بخواید شما از متنی چیزی رو ادراک کنید مثلا علم لزوما اینطوری نیست درک لزوما اینطوری نیست درک لزوما اینطوری نیست راي لزمان این طوری نیست بدود شست و باجه رو مرمون و را دوجه معنی کرده که اینا همه قریب بل افقان به لحاظ معنایی و تفاوت ها اینا رو بیان کرده از جمله فهم رو چون همه این جهت رو توجه داشته در یکی از شواهد روبوبیه هست کم در اسفار این واژگان در واقع معرفت شناسی رو به معنایشون معنی میکنیم حدود شهست تا واژه رو از همین قبیل که همه به نحوی به مسئله علم و معرفت رو اینا مربوط میشه ایشون راجب فهم همین نکته رو میفرماد که فهم درک از لفظه ممکنه کلمه درک کلمه علم کلمه مثلا معرفت امثال اینها اینجور نباشن این یه نکته وقتی میگیم مفهوم اینو یاد نواد بره که مفهوم باید از متن به دست بیاد براخره یکی از فرقهای مفهوم با دیگر انواع دلالت هایی که بحث می کنیم خصوصا این دلالت هایی که در مباحث عقلی اصول مطرح میشه اونا لزومن از لفظ ممکنه به دست نیان مقدمی واجب واجب است اینکه که بگیم از لفظ سل ما میفهمیم فتوزه قبله قبلها این در دست نمیاد یه <تصفح> نکته که کلمه فهم رو داریم جا از مادی فهم استفاده شده مفهوم و من این جهت رو حقیقت میکنم که کلمی فهم این نسبتی دارد با متن و نهایتاً می خواهیم بگیم که بالاخره مفهوم پاش تو متن پای در متن داره، بعد از متن دریافت شده باشد نکته به کلمه دومی که به نظر من کلیدی و مقفول نمونه مسئله ظهوره در واقع معنا نوع ظهور بخی ما از متن اخز می ما در مقابل ظهورگیری هستیم به استرال ظهور و در واقع می ببینیم آیا اگر یک ای مثل جمله شرطی بود که یه معنای ظاهری داره یا منسوسی داره اصلا نصره آیا ظهور دیگری به نام معنای مفهوم داره در یک چیزی دیگه ای در یک قضیه دیگری که بهش میگیم معنای مفهوم مقابل منطوق مقابل معنای مطابق آیا چنین معنایی هم داره ظهور در هم داره یا نداره در حقیقت ما اینجا دنبال دریاد ظهوریم ما با ظهور سر و کار داریم ما نمیخواید هر گونه فهمی را اگر کسی مثلا فرض کنید که از یک واژه‌ای به یه چیز دیگه منتقل میشه مثلا یه معنایی تداعی میکنه براش او ظهور نیست بسا یه نفر با یه نفر دیگه میان آشق و رمزی رمزیست چه داند اون که غشتر میچراند؟ بین دو نفر یه علامتی یه چیزی و یه مطلبی رو تا او اون کلمه رو بگه اون مثلا علامت نشون بده اون حرکت رو انجام بده اینم به ذهنش نکته میرسید این ظهور نیست ظهور از لفظ بس. در واقع ما اینجا مسئله من زهوره ولی زا گفتیم که نزا سوق رویست نزا بر سری اینی که آیا ما ظهوری به نام مفهوم داریم یا نداریم وقتی میگیم آیا آیا مثلا جمله شرطیه وصفیه قائیه لغبیه اینا معنای محفوم هم دارن یا نه یعنی ظهور مفهومی هم دارن معنای مفهوم دارن یعنی این لفظ یه ظهور لای دهم ثانوی و تبعی هم داره یه ظهور اصلی و اولی داره ها من منطوق بر اون واسطه شده اصلا آیا به علاوه این ظهور دیگری هم داره این متن این جمله شرطیه یه لایه دیگری از معنا که به نحو طبعی و به صورت سانوی به نحوی از آنها، از همین متن به دست بیاد ما دنبال ظهور هستیم و کلمه ظهور کلمه است که باز ما رو پیون میزنه با متن، با لحوزه ما دنبال اینیم که از لفظ چیزی رو دریافت کنیم <تصفيق> لحاظا به نظر ما باید ما کلمه ظهور رو در تعریف بیاریم با همین کلمه تکلیف خیلی سو روشن میشه دویگه اصلا کسی نمیپرسه که واجب واجبم وجوب مقدمی واجبم از مفاهیم میگیم آقا مگه که واجب از لفت همی زهوره هم. مگه واجب وجوب زهور دارد وجوب زل مقدمی زهور دارد در وجوب زل باید هم. کسی هم عرفی نمیتونه بزنیم تکلیف روشنیم یعنی این است که در مقام تعریف باید از واجگانی استفاده کنیم که عناصر جوهری مرادمون رو و مختارمون رو مقترحمون رو از اون حلقیی بتونه برسوده به نتیجه ما تعریف که ارائه میکنیم با لحاظ این حیثیات. چند تا نکته خواهیم اجمالا بگیم تقریبا بخونیم یک این شد که ما مفهوم رو میخوایم معنی کنیم مفهوم از فهم فهم هم گفتیم که به اون نوعی از درک میگن که از لفظ و مطر به دست میاد دو اینکه ما در اینجا بحث دنبال ظهور یابی هستیم احاز ظهوری بحث صی میکنیم آیا ظهور دارد یا ندارد ک گاه صوقبی. اگر سباس ظهور دارد دیگه حجته دیگه بحثی نداره چون ظاهر حجت هست. تمام رو رو دووا نداریم زوا نداریم که آیا ظهور حجر یا نه؟ دووا داریم که آیا ظهور حاصله یا نه موجود یا نه. اینان دوه. نکته استهومی که مسلم این است که معنای مفهوم معنای اولی نیست معنای اصلی نیست. ان جا اکا زیدون فاکرمه فا معنای اصلی و اولیش همین است که اگر آقای زید وارد بر شما شد اکرام کند همین که از منطق منطقی منطقی منطق من اولی مسلم اینه که معنای مفهوم معنای اولی نیست معنای سانبیه و این معنای سانبی طبع معنای اولیه ولی اینطور هم نیست که بگیم که مثلا دو تا معنا داره یکی از هر یکی ظاهر یکی نسل یکی ظاهره مرتبتاً با هم فقط فرقه می کنند. یعنی به مرتبی ظهور کلبت فرقه می کنند. چون بالاخره معنای منطوق ظاهرن از هر تا معنای مفهوم ولو این که کردیم، هم کردیم راجبین که میگن معنای منطوق اقوا از معنای مفهوم است همیشه مطلقاً گفتیم نه این اطلاق نداریم که یه مرتبه ممکنه که الکنایتو من است تصریح باشه بزرگان اینطوری نیست ولی خب کمابیش روشنه که معنای اول اصولاً معنای منطوقه پس معنای مفهوم که دنبالشیم این معنای دوم میشه پس او رو اسمشو میذاریم معنای اصلی مفهوم اصلی ظهور اصلی مفهوم رو اسم میذاریم ظهور طبعی و فرعی اینم یه نکته نکته سوم بوم که به هر حال ما بعد نحوه این ظهور رو توضیح بدیم ظهور معنوی و معنای مفهومی و معنای مفهومی به هر حال چگونه خلقه میشه به یک از دو شکل اینو خیلی هم گفتن حالا به این طرزی که ما عرض میکنیم نفر بودن ولی عموان توجه داشتن ولی خب بعضی هم توجه نداشتند که در بعض تعریف اشاره کردیم و اون این است که از یکی از دو راه مفهوم به دست میاد ما به معنای مفهوم از یکی از دو پلی که پیش و رومونه عبور میکنیم با یک عبارتی عبری پلی غنتری داریم دو داریم. از از دو پل داریم از یکی از این رو ما دور کنیم یا رأسن از لفظ ادراک میکنیم یا قرینهی که در کنارین افز قرار میگیره منطقه باید توجه کنیم که به هر حال اون چرا که ما به عنوان ظهور مفهومی به دست میاریم گتره نیست دل بخواهی نیست که هر چیزی رو مفهوم تلقی کنیم مثل این هموسیان های افراتی بگیم که آقا ما ایم و مهد چی کار داریم لافظ و معلف چی قصد کرده بوده نه ما میگیم ما دنبال کشف قصد لافظیم دنبال کشف و فهم نیت و مراد معلقی پیشتر گفتیم مجموعه هموتوزین ها به سه دسته تقسیم میشن یه دسته میگن یه دسته میگن که به اصلاح میگن معلق نهبریم یه ده پاری و چند دیدگاه و نظریه از انواع نظریه هموتوزین در این مشترکن که مؤلف بشویم یعنی میگن ما باید نیت مؤلفو کشف کنیم و متن واسطه است ابزاره ما بریم سراغ مؤلف ببینیم مؤلف چی میخواسته بگه مراد باید کشف کنیم در مواجهه با متن کار ما اینه دست دوم میگن که نه پس تابع اینا بگه متن مهبلن میگن ما این مهم متن بود می‌ازیم متن چی می‌فهمیم چیکار کنیم مؤلف چی اراده کرده نیتش چی بوده است که کش کنیم ما با یه متنی رو برو هستیم با این با تعاکی کنیم تعامل کنیم و ببینیم از این متن چه به دست میاد بارق از این که مؤلف دنبال انتقال چه محتوایی به ما بوده است متن محور خب این یه نوع نظریه افراطی است گروه سوم میگن مفسر محوریم ما گروه سوم مفسر محورن میگه اصلا کاری با ندارم حتی کاری با متنم ندارم این منم که ببینم چه میفهمم. در واقع حتی نه تنها دنبال فهم مراد مؤلف نیستیم، لفظ نیستیم، حتی دنبال نیستیم بفهمیم این مطلب چی میخواد ادا کنه، بلکه ما معنا رو تو دهن مات میکشیم. بولو آقا که از این نفراتیونه میگه. مت گرسته معناست معنا را ما باید تزمهت بدیم در چه یافته ها و داشته ها و پیش فرض های من مخاطب من مفسر اصله و این معنا را درست میکنه در چه هر کسی از مهت یه چیز میفهمه مطابق اون چه که پیش فرض ها و پیش داشته هاشه. و عهدی هم نمیتون بگه این درست فهمید و نادرست فهمید اصلا درست و درست معنی نداره اینجا اصلا میدان میدان سنجش نیست هر کسی هرون چه فهمید اون معناست و حتی معلف هم در اداد مفسران است اگر حافظ غزلی گفت آمدن مفسرانی اون غزل رو تفسیر کردن یکی اینجور دونجور سبومی سومی، پنجومی نهومی نهمی، هم خدا آقای حافظ سر از خاک بردوش که آقا منظور من از این شعر این بود میگن خیلی خوب اینم هم دهم تفسیر نمیگن حافظ چی گفته میگن اینم ده دهمین تفسیری این حتی معلقم وقتی چیزی رو تفسیر میکنه چرا چون محور مفسر مفسر محور است این نظر سوم و دوم افلاطونی دیگه روشنه چون در این نظر میگه که مفسر تعیین کننده ذهنیت مفسر اصلا متن معنای ثابت و واقعی نداره معنای ثابت نداره معنی نفس الامر نداره اون گروه دوم میگن که به اصطلاح معروف است به مرگ مؤلف میگن مؤلف چیزی گفت و این ارثی که مونده دیگه راضی به اون وارث نداره این مثل که میگیم به صورت قهری موارث منتقل میشه به مرگی یکی دیگه میشه این <تصفح> اون گروه اول <تصفح> چی میگه به اصلا معلق مهوریست تقریبا در اصول ما اونو قبول داریم در اصول ما دنبال اینیم که مراد شارع رو در کنیم میخواییم مراد شارع رو کشف کنیم ولی خب طریق دسترسی به مراد شارع ظهورات پس بنابراین به متن هم اعتناد داریم به متن اعتناد داریم و میخوایم مطن و پل قرار بدیم و منتقل شدیم به مراد شاره پس با به مقص از سوی ظهور با ظهور سر و کار داریم پا این مطن چی ظهور داره؟ از سوی دیگه با قصد معلف سر و کار داریم این مراد معلف چی بوده پس من باید اینجا باز در مفهومم قصد باید دخالت بدیم بعضی از عازم قصد و دخالت دادن در تحریک معنای مفهوم معنای که قصد شده یعنی شما مفهوم میخواید بگیرید اینطوریست که هرچی دلتون خواست نه خیر. مفهوم باز معناییه که بالاخره لافظ و متکلم قصد اونو کرده و میخواید اون قصد رو کشف کنید پس مقصود بودن هم یه انصار دیگه است. جهت دیگه اینکه بالاخره باید پیوندی بزنیم بین این معنای مفهومی که ما دنبالش هستیم کشف کنیم یا چنین مفهومی چنین معنایی هست یا نیست اثبات کنیم این بالاخره یا پیوند دارد با حق و هستی معنای منسوس که اون معنای مطابقی و منطق به حساب میاد معنای منطوق ها و معنای منصوصه. یا حیوان دارد با آفاق پیرامون اون معنا. که در اصطلاح سنتی بهش میگیم قرینه مقامیه. شما یه قرین مقالیه داریم که خود لفظ در حیوان قرینه مقامیه داریم یعنی مقام و اطراف قضیه، آفاق قضیه. دلالت های آفاقی به تحبیر ما, ما در یه بحث های اینا رو کردیم دلالت های آفاقی که از پیرامونگاه یه چی داری فهمیم پس بنابراین ما بنا نداریم معنای رو به نام معنای مفهومی بر متن تحمیل کنیم بلکه مفهوم رو آنی می دانیم که یا مستقیما به خود معنای منصوص گره خورده یا اینکه به قرائمی که باز در پیرامون آن است و در پیوند به آن است این دو جهت این دو قطب خوب خیلی از بزرگان فرمودن به درستم است که یا از لفظ می‌فهمیم یا مثلا با مقدمات حکمت از قرینه این هم نکته نکته دیگر این که به هر حال بین معنای منطوق و معنای مفهوم ملازمه هست این تلازم را ما قبول داریم به هر حال بین معنای منطوق و مفهوم یه ای هست اینجور نیست که هران چه بفهمیم ولو بدون ملازمه احياناً بگیم معنای مفهوم هست اضافه کنیم بر اینها بعضی نخاطی دیگر رو که در ما اصلا در واقع مطلق گذاشتیم که بتونیم تطبیق دو میبری نا از جمله این که بعضی آمدن گفتن آقا معنای مفهوم معنای مخالفه هیچ دلیل نظره ما بیاییم در واقع به اسطلا مفهوم مخالف رو فقط بگیم محل بحث ما رو مفهوم مخالفه نه مفهوم خودش به در قصد تقسیم میشه موافق مخالف مفهوم مخالف هم مفهومه بلزون مرحوم اخوند گفت بخ... وافقه و خالفه وافقه او فذ بالاثبات و فز... بالسل او خالفه بعضی اومدن با اخوند ایراد گرفتن که او مفهوم مخالف رو شما وارد کردید در تعریف اطلاق با توجه و... وارد کرده مفهوم مخالف جز مفاهیمه و مفاهیم اصلی مونن چون که بعضی عکسش رو را میراد کردن از بعضی گفتن آقا شما مثلا میگید مفهوم موافق هم جز مفاهیم مثلا مفهوم اولویت مفهوم اولویت مثال معروفی که می‌ذارین مفهوم اولویته ولا تقل لهما اوفن تعفیف نکن با لهنه بد با پدر مادر حرف نزن مفهوم موافقش این است که پس دوشنام هم نده پس ضربوش اتمن نکن این مفهومه این هم هستیم بعضی یا در تعریف با توجه خواستن هست مفهوم سر موافق رو نه به نظر ما هر دو مفهوم مفهوم الان اطلاق محله بحث ماست حالا با این توضیحات که ارز شد ما این تعریف رو ارز میکنیم به رفت مضافه یا مضافه یا هر دو قید زهوره یا قید مقصوده یا قید زهور مقصوده از سابت که به تعبیر بگیم قید هر دوه من ویرگول جلوی این گذاشتم اولتو میبینید شما؟ بله من, من ویرگل جلوی طبعی گذاشتم خواستم بگم هم زهور طبعی منطق طبعی بودن ظهور و میکنید توضیح دادیم مستفادون به معنی اصلی بلاخره مستفاد یعنی معنی اصلی اول این طبعه اوه. هم مقصود طبعیست یعنی اول اگر خودم امتعال فرموده باشد و لا تقول و افن اول میخواستن این معنی منطوق حکمش رو اعلام کنیم ولیکن در این حال به دنبالش میخواسته این که شما دوشنام ندید رو هم تحریمش رو اعلام کنیم به طبع همون می‌چی را نداری که ما تبعی رو هر دو بدونیم. بله دیگه، چون داریم می‌گیم که شما اگر بله، اما بله. اگر فرض بفرمایید که کسی در همین های معروف فرض کنید اینجا های که زیدون فکرم ها این ضرقه آقیون ذکر کردن گفتن که حکم غیر مذکوره که از حکم مذکور به دست میاد یعنی اون حکم غیر مذکور به طبع حکم مذکور به دست میاد به دنبال اون به دست میاد مستقبادش قبول دارم هم ها بودنش رو بلاخره یاد ظهور تصمتونی رو زیدون تصمتیقی بگیر اگر لازم حتا اگه اونم معلوم ننشته باشیم ظهور خب این ظهوری که تبعیتی نداره ظهور داره دیگه حالا ممکنه اونم مستفاد از این باشه معنای این معنای التزامی اصولا ظهور طبیعیه اشاره کردم دیگه وقتی بحث کردیم ما اینو سال‌های گذشته بحث کردیم ما الان در سال 15 سال این دوره اصولمون و دیگه 1000 و سومین درس بود امروز مسابقه این رو بحث کردیم معنای التزامی تبعیه، یعنی معنای سانویه چون ملازم با اوه اون اثبات میشه اینه ملازم با او اثبات میشه یعنی در ظهور هم از او طبعیت کرده چرا؟ همون مستفاد من معنای اصلی هم یعنی بازم از, ما ما از لفظ مستقیمن نگرفتیم از معناش گرفتیم یعنی به طبعه ولی اشکال نداره ظهور طبعی باشه حالا بعد من اگر امروز پرست شد این انواع ظهورات رو فهرستشون میگم من تصریح کردم به که این زورتبه یه ظهوره خودش بله واسه تبعی هم واسه ظهور میتونه باشه هم ظهور هم مقصود یعنی هم لفظ هم لفظ هم بنسبت لافظ تبعی نیت دوم لفظه یعنی مولا اراده کرده معنای مفهومی رو نه که بگیم اون اینه میخواست من خودم دارم گفتیم ما به سه و تنهای فطری نیستیم بگیم که من میخوام معنا تودهان لفظ بگذارم نه خیر مولا اراده کرده معنای دوم رو هم خداوند قطعا اراده فرموده از حرمت زرب و ذرب و شطوه پدر مادر رو مراد خداست مونتا چی بواسطه با با معنای اول ما اینو دریافتیم بنابر زور میتونه صانعلی و طبیعی باشه چون مقصود هم میتونه با اولی و سانوی داشته باشه مقصود اول اون مقصود دوم این میتونه باشه ظهور مقصود تبعی. و در این خواهیم بگیم که هر ظهوری نه، ظهور مقصود و در این حال طبعی اون اولی نیست مستفاد من معنی اصلی منصوص پل کلام مستفاد از معنای اصلی این یه پول. پس ما مفهوم رو یا از خود اون معنای اصلی دریافت میکنیم رأسا قرینه هم نباشه او مستادون من المقام یا از قرین مقامیه یه پل دفعه دریافت میشه در این حال لوجود تلازم بینه ها ما چرا؟ بلچه باید ما از مثلا معنای منسوس پل بزنیم به معنای مفهوم ولی که بهشون تلازم هست بی ملاک نیست این که دل بخواهی ما معنای منسوس رو پای قرار بدیم بعد یه چیدی رو برش تحمیل کنیم نه خیر بلکه چون بین این ها یه تلازمی وجود داره ما میتونیم مجازی کارو بکنیم منطقه منسوس رو کلامه ایند کلامی زهور داشته باشه و نصد نباشه ازش که چی گیره؟ نه اینجا منصوص به معنای نست در مقابل ظاهر نیست یعنی تصریح شده است کلمی منصوص در واقع مذکور در واقع من اولش هم کلمی مذکور گذشتم ولی به لحاظه رسائی کلمی منصوص مناسب تره منصوص یعنی که تصریح شده بشی تنصیص مثلا وقتی ما میگیم تنصیص فرض فرمایید راجع به امامت حضرات محصوم سامرالیهم یعنی چی یعنی شده. معنی آشکار رو گفته شدیم اون معنای آشکار همون معنای مذکور مراد اینه نه این که نص باشد ظاهر نباشد نه ممکنه که همون حکم ظاهر را یا ازهر رو ما داریم بعد معنای مفهوم که یا حکم باطنی سانوی و طبعی رو ارائه میکنه از اون بتونیم دریافت کنیم نهورون مقصودون تبعی مستفاد من معنی اصلیا منصوص, منصوص نه ببینید الان اصولا کلمه نص رو به اون معنی سنتی اصلا به کار نمیبرن نص یعنی متن در لغت هم نص یعنی متن اصلا به کار به کار الان وقتی میگن نص النصوص المعاصره یعنی مقالات و متن های عصری جدید و با اون معنی نیست کلمه نس اگر به کار بره ممکنیه کمیش رو ایجاد کن ولی ما دیگه ماده نس رو کنال امتون بذاریم سایر مشتقاتشون به کار میبریم دیگه حالا اینو در حال این تعریف ما رو دقت بکنید اگر به نظرتون اشکالی بود اگر پیشنهادی داشتید جلسی وقت بفرمین ولیکنه لیسه یعتبر کل مستفاد تبعی و تلازمی مفهومه و اینها علی القول به وجود الواجب و الأمر الامر بهشی انهی انزده و اقتداء انهی ان العباده، فسادها و ما مثلا لا يعتبر من المفاهيم قطعا لانهو ليس شيء منها يستفاد من النس اصلا بل یستاد من اللذوم العقلي، او عربی او غیراما راجب زهورات از که اینجایی که به تعریف این صاحب کفایی اگر حلاقه به کارگونایی اونجا ما در واقع حلال مبنایی ایراد گرفتیم شکال اول ستشکالی که گرفتیم به اعتبار که ما حلازم رو تکشگاه صرفا نباید بتونیم باید حلازم رو به زمینه مثلا پای در معتن داشتن باید لحاظ کنیم که با معتن مواجب تفاوت کنه برای این به صلا که خوندیم اشاره به همین جهت داشت ناه اراده دربال مون تا تو علاقه ملازمه برسیم بعضی اتفاقا تعبیر به علاقه کردن ولی از توش ملازمه در نمیاد و خیلی مطلق میش هر گونه رابطه‌ای هر گونه رابطه نیست بلکه رابطه‌ای تلازومیه تلاظمی بود تلاظم نبود ولی ظهور بود نه دیگه ما میگیم لزومن تلاظمی بعد باشه بلید قید داریم میکنیم هم همه, همه تلاظم قبول دارن. از کنم ظهور من اجمالانی مطلوبه خونم جلس تمام شه تعریف ظهور فی اللغه مقابل الغیاب و الظاهر حسب مستلح اصحاب الاصول استعمل بمان المدلول اللفغی و يكون یکون و اوضح من الاختنالات الاخره او دعنا اللحظ المتزح دلالته دو جور میشه ظاهر رو معنی کرد یه بار ظاهر رو صفت مدلول معنا میگیریم معنای ظاهر یه وقت ظاهر رو صفت برای لحظ میگیریم اللحظ المتزح دلالته غیر این در موقع ناسا مجمل قرار میگیری در صورت و هینجین الوضوع یکون يكون وصفن به حال متعلق. و الظاهری قابل انس والازهر و الازهر اخرى و المجمل سالستن و يطلق على الدال البين معناه به لا يحتمیل معنا آخر و الظهور یکون الا اخسام اینو فقط فهرستو بخونیم برای اینکه که جای برید پیدا کنید این همه ظهورات رو جمع کرده باشن و این واسه شرح کرد البته خودش میشه رساله ای کسی رساله خاص بنویسه همین انواع ظهورات رو شرح کنه و استدلال کنه و برایند و مقطیاتش رو بیان کنه میشه رساله بعد ظهور یک نوع الاخصان و اهمهایی از ظهور اصلی همین که الان گفتیم المطابقی المنطقی مقابل التزمونی و التلازمی ظهور الاطلاقی الظهور الانصاری انصرافی ظهور التسدیقی ظهور التصوری از ظهور التزمني، از ظهور مقابل التنجیزی. هشت، از ظهور التبعی مقابل الاصلی. گفتیم تبعی رو خودشه ظهور تلقی میکنیم ما. الظهور از ظهور التنجیزی، از ظهور الذاتی به ترتیب الفبا من الظهور از ظهور السياقی، از ظهور العراضی ظهور از ظهور القرینی و المقالی مقابل الحالی والاصلی. یا حالی یا خودمعنی هستی از ظهور القرینی و الحالی مقابل المقامی و اصلی، از ظهور اللفظی، از ظهور المفهومی، مقابل المطابقی، از ظهور الموزی و مایلازالک در مجموع حسب ما مره ان المعنى اما منطوقون او مفهوم که محل بحث ماست در گذشته به جای کلمی مفاهیم برای عنوان این بحث عنوان بحث میذاشتن میزشتن المفهوم والمنطوق اصولیون قدیم به جای مرحث گفتن بگفتن و والمفهوم اما منطوق و نو مفهوم والمنطوق اما سریحون و هوا علاق اسمین النص و الظاهر او غیر سریح و هوا علا سلاسه تقسام الاقتضاق الایما و الاشاره والمفهوم اما موافقون فیوسما لحن الخطاب او فهم الخطاب او مخالفون فیسما دلیل الخطاب پس مفهوم هر دو قسمش مفهوم است و الموافق اما مصابن او غیر مصابن و المخالف قسم الى اقسام کتالی مفهوم الشرط مفهوم الوصل، مفهوم الغایت، مفهوم الحسر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. و الله محمد و